آیا تا کنون به هدی نامید شدین که به نظر می رسیده همه چی در حال خراب شدنه؟ امروز ما از چنین زمانی در مورد قوم اسرائیل و از پیغام خدا توسط نبی و ارمیا صحبت خواهیم کرد. لطفاً به معلم ما گوش کنید تا پیغام ارمی های نبی رو با شما در می اون بررسی کل کتاب مقدس به کتاب انبیا در عهد قدیم رسیدیم. بعد از اینکه کتاب اشعای نبی رو بررسی کردیم و گفتیم که نبی انبیا بود حالا آماده هستیم که کتاب نبی بزرگ دیگری از عهد قدیم رو بررسی کنیم نبی بعدی ارمیا هست ارمیا به نبی گریان معروف است چون به نظر میرسه که همیشه در حال گریه بود دل ارمیا شکسته بود اگر نبوت ارمیا رو بخونید مطمئنم که از این واقعیت آگاه خواهید شد که کتاب ارمیا تمامی 52 باب اون کتاب از یک سری گریه ها تشکیل شده. از این رو بسیار مشکله که کتاب ارمیا رو بتونیم خلاصه کنیم چون مردم به صورت خلاصه گریه نمی کنند. بعد از اینکه ارمیا در 52 و دو باب گریه میکنه شعر کوتاهی می نویسه که زمینه نبوت او هست که به مراسی معروف است. مراسی به معنی سوگواری هست این نشون میده که ارمیا در کتاب مراسی هم، گریه هاش ادامه میده وقتی ارمیا نبی رو میبینید که هم ردیف نبی بزرگ اشعیا بوده باید از خودتون بپرسید او برای چی گریه میکنه چرا این همه ناراحته در باب چهار آیه 19 ارمیا به زبان عبری فریاد میزنه احشای من احشای من این عملا یک ترجمه بسیار ضعیف است چون عملا این احشای ارمیا نبود که او رو عذیت میکرد. این قلب او بود. در ترجمه های اصلاح شده، قلب من قلب من اومده. کسانی که اون موقع زندگی میکردن، فکر میکردن که جایگاه احساسات شکم انسان هست. چیزی که ارمیا واقعا هم بهش اشاره میکنه، همونیه که من بهش انسان درونی ارمیا گفتم. انسان درونی او در هم شکسته. سوال اینه که چرا این انسان شکسته؟ همینطور که در جلسه قبلی تاکید کردم. در آیه های نخست بسیاری از کتاب های نبوتی نام پادشاهان معاصر با اون نبی ذک شده به این دلیل که ما قبل از انبیا کتاب های تاریخ رو مطالعه می کنیم اگر شما با پادشاهان آشنا هستید که در نوشته های پادشاهی و اول و دوم پادشاهان و اول و دوم تواریخ خوندیم وقتی اسم اون پادشاه رو میشناوید بلافاصله میفهمید که چرا همیشه گریه می کرد در نخستین آیات ارمیا گفته شده که او خدمتش رو در سال 13 سلطنت یوشیا شروع کرده و در دوره تمامی پادشاهانی که بین یوشیا تا صدقیا حکومت می خدمت کرده. به این معنی که دیگر پادشاهان عبارت بودند از یهویاقین یاقین، یهو و یهو آهاز. حالا اگر اون اسامی هیچ مفهومی برای شما نداشته باشند، نمی هیچ دیدگاه تاریخی از نبوت ارمیا به شما بدن. به هر حال اگر با اون پادشاهان آشنا باشید و بدونید که وقتی اونها زندگی و حکومت می‌کردند چه شرایطی حاکم بود، خواهید فهمید که چرا دل این مرد شکسته بود. ارمیا حدود 41 سال خدمت کرد و خدمتش رو در زمان حکومت پادشاه خوبی به نام یوشیا که بر یهودا حکومت می کرد شروع کرد. یادتونه که در خلال حکومت یوشیا بود که تعدادی از کارگرانی که در کار بازسازی معبد شرکت داشتند، نسخه های کلام خدا رو پیدا کردند. قوم خدا کاملا از خدا دور شده بودند و از دین برگشته بودند. اونها به لحاظ روحانی از خدا دور شده بودند و حتی کتاب مقدس یا شریعت خدا رو فراموش کرده بودند. وقتی اونها معبد رو تعمیر میکردند، تومارهایی از کتاب مقدس رو پیدا کردند. عملا این یکی از بستگان ازرا بود که کتاب مقدس رو پیدا کرد. یافتن تومارهای کتاب مقدس آشکارا راهی بود که خدا ازرا رو تحت تاثیر قرار داد تا وسیله ای انسانی بشه. کاتبی بشه که تحولی در علاقمندی به کتاب مقدس به وجود بیاره. محققین بری این که از که ازرا مردی بود که عهد قدیم رو به کتابهایی تقسیم کرده و اون رو طبقه بندی نموده. تمامی این وقایه در خلال بیداری روحانی و علاقمندی به کتاب مقدس در زمان حکومت یوشیا واقع شد. پادشاهانی که بعد از یوشیا حکومت کردند، همگی مربوط به دوره سقوط اورشلیم و اسارت بابل هستند. اسامی مانند یهویاقیم و یهویاقین و صدقی ها به ما میگن که ارمیا در دوره سقوط اورشلیم توسط بابلی‌ها موعظه می‌کرده. اورشلیم مثل پاریس، سنگاپور و دیگر شهرها که در جنگ دوم جهانی سقوط کردند یک شبه سقوط نکرد. یادتونه که در کتاب دوم پادشاهان سقوط اورشلیم رو مطالعه کردیم. سقوط اورشلیم ای بود که یه دوره 20 ساله اتفاق افتاد. اولین باری که اورشلیم سقوط کرد، یهویاقین پادشاه بود. او تسلیم ارتش نبوکت نصر شد و به مدت سه سال در اورشلیم نبوکت نصر را خدمت کرد. وقتی نبوکت نصر رو فت کرد، ارتش بابلیها وارد شدند. یهودیان مجبور شدند به بابلیها خدمت کنند و به اونها خراج بپردازند. به هر حال بعد از سه سال یهویاقیم سرکشی کرد و ارتش نبوکت نصر باز و اورشلیم را برای بار دوم محاصره کردند. وقتی اورشلیم برای بار دوم فتح شد، یهودیانیم پسر یهویاقیم که پسر بچه ای بود به صورت فرمالیته شهر رو تسلیم کرد. این بار بابلی ها زیادی از مردم یهودا رو به بابل به اسیری بردند. شکست دوم بسیار سختتر از شکست اول بود. قبل از آنکه بابلی ها اوسرا رو به سمت بابل حرکت بدن وقتی یههو شهر رو برای دومین بار تسلیم کرد برادر او صدقیاب به عنوان یک شاه دست نشانده بر اورشلیم تعیین شد. اگر، رهبر منصوب شده کاری که فاتحان دستور میدادند انجام نمیداد، بلافاصله او را عزل میکردند و رهبر دست نشانده دیگری به جای او تعیین میکردند. صدقیا شاه دست ای بود و یازده سال حکومت کرد. اما او هم بر علیه بابلی ها شورش کرد و این بار ارتش بابل تمام شهر اورشلیم رو با خاک یکسان کردند. سنگی روی سنگی باقی نماند وقتی بابلی ها برای سومین بار بر اورشلیم غلبه کردند بجز افراد پیر و بیمار و ضعیف و ارمیای نبی همه رو به اسارت بردن. سومین باری که اورشلیم شکست خورد یک فاجعه بزرگ بود. در آیات نخستین کتاب ارمیا گفته شده که خدمت ارمیا در دوره حکومت یوشیا شروع شده و در دوره یهوآهاز یهویاقیم، یهویاکین و صدقیا ادامه پیدا کرده. این نشون میده که ارمیا در تمام دوره اون فاجعه غمانگیز، که خلاصه کردم در اورشلیم موعظه و خدمت میکرده. این چیزی که ارمیا به خاطرش گریه میکنه وقتی اون ناله میکنه قلب من قلب من شکسته ببینید حتی در طی دوره یوشیا خدا به این نبی مکاشفه نبوتی از تمام اون فاجعه داده بود. ارمیا شروع به موعظه کرد که حمله بابلی ها قریب الوقوع هست و اون اسارت و شکستی که در نتیجه آمدن بابلی ها واقع میشه به خاطر گناه قوم بود. این اساساً به خاطر گناه بودپرستی اونها بود، اما همینطور به خاطر گناهان روزافزون و سرکشی قوم در برابر خدا هم بود. در ابتدا پیغام انبیایی مثل ارمیا، اشعیا و دیگر انبیا یک چنین پیغامی بود. اگر قوم من که به نام من خوانده شده فروتن شده دعا کنند و از راه های شریرانشون بازگردند و روی مرا بطلبند آن وقت من از آسمان خواهم شنید، آنها را خواهم بخشید و زمینشان را شفا خواهم داد. موعظه این انبیا در ابتدا این بود که از احتمال حمله و به اسارت رفتن مردم توسط بابلیها و داوری خدا صحبت می کردن. به هر حال وقتی مردم به موعظه اونها اتنان کردند پیغام اونها عوض شد. پیغام بعدی این بود: داوری خدا می آید. هیچ راه گریزی از آن نیست. وقتی خدا این را به ارمیانشون داد. خدا مکاشفه ای به ارمیا داد که بسیار واضح بود که ارمیا میتونست صدای سپاهیان بابل رو بشنوه. او میتونست صدای فریاد مردم رو بشنوه که قتل آم میشدن. زنان و دختران جوانی که مورد تجاوز قرار میگرفتند. با مکاشفه نبوتی ارمیا میتونست عملا اون صداهای وحشتناک رو بشنوه. به این دلیله که ارمیا میگه قلب من شکسته. خدا به ارمیا آشکار کرده که فاجعه در راهه. و اون داوری خداست. و حتمی هست. وقتی محاصره اورشلیم شروع میشه ارمیا در موعظه اش پیغامی داده که مورد علاقه مردم نبود و او تبدیل به منفورترین نبی در بین انبیا شد ارمیا یک پیغام دوگانه داشت بخش اول پیغام او غلبه و اسارت بود که این پیغام سرنوشت حتمی و داوری بود اما پیغام ارمیا جنبه دیگری هم داشت که پیغام امید بود وقتی که اشعیا سقوط پادشاهی شمال رو به دست آشوری ها پیشگویی کرد، او نتونست هیچ وعده ای از امید درباره حجوم و اسارت به مردم بده. چون که ده تایفه شمالی به فراموشی سپرده شدند و هرگز نامی از آنان برده نشد. اما انبیایی که آمدن بابلی ها و حجوم و به اسارت رفتن مردم رو نبوت کرده بودند، پیغامی از امید داشتند که موعظه کنند. چون که خدا برای اون انبیا این مکاشفه را هم داد که موعظه کنند. بعد از هفتاد سال از اسارت بابل باز خواهید گشت اشعیا این پیغام و امید رو 170 سال قبل از وقوع موعظه کرد ارمیا هم همون پیغام امید رو با قاطعیت داد و موکدتا به اون ایمان داشت که وقتی ارتش بابل شروع به محاصر او شلیم کردند ارمیا شروع به موعظه این پیغام کرد او گفت این کلام خداست این نقشه خداست و حتمی هست. شما نمیتونید هیچ کاری در مورد اون بکنید پس بهتره که برید و تسلیم نبوکت نصر بشید به بابل برید چون هرچه زودتر به بابل برید زودتر برخواهید گشت با نبوکت نصر نجنگید ارمیا اینطور طور موعظه میکرد خداوند نبوکت نصر رو به کار گرفته تا شما رو تنبیه کنه اگر با او مخالفت کنید با خدا مخالفت کرده اید ارمیا موعظه کرد که قوم یهودا باید تسلیم بشند و قوم یهودا به این خاطر از او نفرت داشتند اونها میگفتند که پیغام ارمیا خیانت هست و مردم حس می‌کردند که او یک خائنه. او رو به سیاه چال انداختند و به یک آبنبار خالی انداختند که پر از لجن بود. اونا تنابی زیر بازوان او بستند که بتونه روی ها شناور بمونه. او رو در اونجا رها کردن تا گرسنگی بکشه و با موش ها زندگی کنه. رفتار اونها با ارمیای نبی غیر قابل وصف بود. اما باید درک کنید که چرا این همه از او نفرت داشتند. اونها تحت محاصره بودند. بعضی از اون محثره بیش از دو سال طول می کشید. اونا گاهی مجبور می شدن فرزندان خودشون رو بخورند چون قحتی به اونها فشار می آورد و اینجا این نبی نه تنها میگه من که به شما گفته بودم بلکه به اونها میگه خدا میخواد که شما برید و تسلیم دشمن بشید امروز ما کسانی رو داریم که خودشون رو به درهای نیروگاه های هستئی زنجیر میکنند و انواع کارها رو انجام می دن تا پیغامشون رو اظهار کنند. ارمیا و بعضی از انبیا شبیه اینها بودند اونها برای اینکه منظورشون رو بیان کنند دست به هر کاری میزدند. اونها به وضوح چیزی رو که سعی داشتند به مردم بگن شرح میدادند گاهی توسط کاری که به اون معزه عملی نمادین میگیم معزشون رو انجام میدادند مثلا ارمیا یک معزه بزرگ عملی نمادین داشت که در باب 18 کتاب او به نام خانه کوزگر اومده ارمیا اینطور طور موعظه می کرد که خدا به او گفته که به یک کارگاه کوزگری بره. پس او به یک کارگاه کوزگری رفت و در حالی که اونجا بود میدید دید که کوزه‌گر کوزه‌ای می‌سازه. کوزگر سعی می‌کرد ظرف زیبایی بسازه اما ظرف اونطور که کوزگر می‌خواست از کار در نیومد. کوزگر ظرف رو نپسندید و اون رو بر زمین انداخت و له کرد. گل اون رو جمع کرد و از اون ظرفی تازه ساخت. وقتی ارمییا این رو موعظه کرد، سعی داشت به مردم اینو بگه که گوش کنید شما به بابل خواهید رفت اما هفتاد سال بعد بر خواهید گشت شما ظرف کوچکی هستید یک تکه کوچک سفال که سفالگر شکل داده یک تکه کوچک سفال که خدا شکل داده شما اونطور که خدا میخواست از کار در نیمدید پس خدا شما رو تنبیه کرده خدا شما رو داوری میکنه به این معنی که شما رو به زمین میندازه شما رو له میکنه جمع میکنه و ظرفی تازه می سازه وقتی از اسارت بابل برگردید مخلوقی کاملا جدید خواهید شد ظرفی کاملا تازه خواهید شد به این دلیل ارمیا به اونها میگه که برید بیرون و تسلیم بشید اگه شما کاربرد حقیقی دوباره ساختن ظرف رو بدونید این دوباره ساختن تصویر بسیار زیبایی هست قبل از اینکه قوم یهودا به اسارت برند بدپرستانی علاجناپذیر بودن. بعد از اسارت بابل اونها مشکلات زیادی داشتند، اما هرگز دوباره بت پرستی نکردند چون که اونها ظرفهای تازه‌ای بودند که از نو ساخته شده بودند معزه دوباره ساختن ظرف سفالی ارمیا و کاربرد شخصی اون رو ملاحظه کنید گاهی زندگی‌های من و شما طوری که خدا طراحی کرده پیش نمیره ما کاری رو که خدا میخواد انجام نمیدیم پس خدا زندگی‌های ما رو از نو می‌سازد آیا تا حاله احساس کردید که ظرفی بودید که دور انداخته شدید، شکستید و تکه‌های سفالی شدید و ناگهان زندگی شما متلاشی شده؟ احساس کردید که گویی بر روی توده های شکسته انداخته شدید و دوباره بازیافت شده و ظرفی تازه از شما ساختن؟ تبدیل از ظرف قدیمی به ظرف جدید میتونه دردناک باشه، اما بعد از اینکه ظرف جدید شکل گرفت، اون موقع ظرفی باشکوه خواهد بود. البته این به ما چیزی رو یادآوری می‌کنه که عیسی در تعالیمش در عهد جدید از اون به عنوان تولد تازه یاد می‌کنه. عیسی میگفت شما باید از نو متولد بشید. آنچه از جسم مولود شد جسم است، و آنچه از روح مولود گشت روح است. عجب مادر که به تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید. پولس رسول درباره تعالیم عیسی مبنی بر تولد تازه توضیح میده و می‌نویسه اگر کسی در مسیح است او خلقتی تازه است چیزهای کهنه درگذشت اینک همه چیز تازه شده و همه این کار خداست در عهد جدید ایمانداران به عنوان ظرف توصیف شدند گاهی ما اون ظرفهایی که خدا ما را به اون منظور طراحی کرده نیستیم و بنابراین خالق ما ما رو از نو می سازه من پیغام موفقیت و امید این نبی بزرگ ارمیا رو با شما در میون خواهم گذاش پیغامی که ارمیا برای قوم یهودا وقتی که اونها به بابل به اسیری می رفتن موعظه کرد. بیایید ببینیم که پیغام این نبی گریان فقط پیغام مجازات و دلتنگی نبود. بلکه پیغام امید و تشویق هم بود. این پیغام تنها امید قوم یهودا در لحظات تاریکشان بود. از شما می آیا تا به حال تازه شده اید؟ خدا می چیز تازه از زندگی شما بسازه. بذارید او شما رو مانند یک کوزگر شکل بده. کنترل زندگیتون رو امروز به دست او بسپارید. ارمیا معزه نمادین عملی دیگری هم شبیه معزه بازسازی کوزگر کرده. روزی خدا به ارمیا گفت که ظرف بزرگ زیبایی رو به معبد ببره و وقتی که توجه مردم از جمله مشایخ، کاهنین و کاتبین جمع شد او این ظرف زیبا و احتمالاً بسیار گرانبها رو بر زمین کوبید و خورد کرد. فکرش رو بکنید صدای بلندی از شکستن اون ظرف ایجاد شد که مطمئنم توجه همه رو جلب کرد. یک بار شنیدم که واعظی مخالف ویسکی و مشروبات قوی بود. من در بین هزاران نفر از نوجوانانی که در استادیوم برای ملاقات جوانان با مسیح ترتیب داده شده بود، حضور داشتم. واعظ به همه نوجوانان درباره بدی مشروبات الکلی میگفت. مطلبی در موعظه او بود که من هرگز فراموش نمیکنم او بطری ویسکی در دست داشت و در جایی از معجزش بطری ویسکی را رو بر روی سکوی خطابه کوبید. خورده های شیشه و ویسکی همه جا را فرا گرفت. این ای بود که من هرگز فراموش نمی‌کنم چون که کوبیدن شیشه ویسکی بر روی سکوی خطابه تأثیر بزرگی بر روی من گذاشت. ارمییا باور داشت که با انداختن ظرف بزرگ زیبا بر روی زمین تأثیر بزرگی بر روی جمعیت گذاشته بود. بعد نتیجه ای رو که میخواست از این کار گرفت. وقتی که ارمیا با سازی کوزه ها رو موعظه کرد، در باب کتاب ارمیا، او گفت این تصویری از شماست که بیرون می‌رید و تسلیم نبوخت‌نصر میشید و به بابل می‌رید. هفتاد سال بعد به عنوان ظرف تازه‌ای برمیگردید این چیزیه که خدا می‌خواد. بعد وقتی که او ظرف رو به زمین می‌زنه و اون رو خرد می‌کنه، پیغام کاربوری شکستن اون ظرف رو موعظه می‌کنه. او گفت شمایی که مثل صدقیا با آن نبوکت ننظرمی جنگید و بر علیه بابلیها ها سرکششی می کنید و نمیخواهید که تسلیم بشید مانند این ظرف خرد خواهید شد و از نو ساخته نخواهید شد و باز نخواهید گشت. کار شما تمومه شما کشته خواهید شد. قوم یهودا به خاطر معزه ظرف از ارمیا نفرت داشتند. اونها از این نوع معزه نفرت داشتند. اولین معزه او موعظه کوزه های بازسازی شده بود، دومین موعظه درباره ظرفی بود که در وسط معبد خرد میشد. کاربرد عملی این دو معزه یک چنین چیزی هست زمانهایی است که وقتی ما به عنوان ایمانداران مشکلاتی داریم، چون همه ما مانند گوسفندان گمراه شده هستیم، هر کدوم به راه خود میریم باید عواقب زندگی مانند گوسفندان گمراه شده را تحمل کنیم. در کتاب امسال سلیمان گفته ما باید وحشت راههایی را که انتخاب می‌کنیم تجربه کنیم. خدا از عواقب تصمیمات ما برای تعلیم ما استفاده میکنه. به این ترتیب ما یاد می گیریم. به این دلیلی که باید وحشت تمام تصمیماتی که می گیریم تجربه کنیم. به این ترتیب ما رشد کنیم. حالا وقتی ما اون تجربیات وحشتناک رو داریم، گاهی اون زخمها های برگشت ناپذیری نیستند. ما باید با بشیم. باید از طوفان عبور کنیم. شاید از یک طوفان کامل، اما بالاخره به با عنوان ظرفی تازه بیرون میاییم. بعد از اینکه دوباره ساخته شدیم باید اقرار کنیم اگر چه ماه میخواستیم به خاطر هیچ چیز از نو ساخته بشیم، خدایا من هرگز حاضر نیستم این ظرف تازه رو با ظرف قدیمی عوض کنم. اریکسون یک جوان افلیج بر روی صندلی چرخدار هست شاید در مورد او شنیده باشید. او با گرفتن قلم مولای دندانهایش نقاشی میکنه. در فیلمش به نام جونی او میگه من ترجیح میدم که با این صندلی چرخدار نزد خدا باشم، تا اینکه دو پا داشته باشم اما او رو نداشته باشم منظور جونی اریکسون چیه او میگه قبلا یه انسان سالم و طبیعی بوده اما خدا رو نمیشناخته وقتی که گردنش میشکنه او به عنوان ظرف ای ساخته میشه جونی نمیخواست که به هیچ دلیلی دوباره ساخته شدن رو تجربه کنه به هر حال او طی دورهای دردناک به عنوان ظرفی تازه ساخته شد و حالا حاضر نیست که ظرف جدیدش رو که با ظرف قدیمی وقتی سالم بود عوض کنه اما بدون خدا باشه معجزه شکستن ظرف چیز دیگری هم به تصویر میکشه گاهی در نتیجه تصمیمات ما ما زخمهای جبران ناپذیری برمیداریم زخمهایی هستند که شفا پیدا میکنند اما زمانهایی هستند که ما تصمیم میگیریم و چنان گناه وحشتناکی مرتکب میشیم که عواقبشون به طور قط مصیبت بار هستند و برگشت ناپذیر وقتی گناه داوود رو مطالعه می‌کردیم من این رو گفتم گاهی زندگی شما چنان در هم ریزه که نمیتونید اون رو دوباره بسازید این در موعظه دوم ارمیا به تصویر کشیده شده در موعظه شکستن ظرف پیغام ارمیا بسیار ترسناک بود و گاهی شما از شنیدن های بلا و مصیبت او خسته میشید. در واقع خود ارمیا میگه از آنچه که خدا به او فرمان میده موعظه کنه خسته شده سالها پیش از من خواستند که در جشن فارغ التحصیلی یک دبیرستان صحبت کنم. مسئولین مدرسه از من خواستند که با محصلین سال بالا نهار بخورم. وقتی که با اون دانش آموزان سال آخر نهار میخوردیم از اونا پرسیدم: دوست دارید در شب فارغ التحصیلیتون از یک واعظ چی بشنوید؟ این جشن فارغ التحصیلی شماست. شما این فرصت رو دارید که به واعظ بگید که دوست دارید چی بشنوید. هرگز فراموش نمی کنم که بعد از سکوتی طولانی یکی از اون دانش آموزان گفت باعث فقط چیز خوبی به ما بگو به اندازه کافی اخبار بد جنگ ها خرابی ها و چیزهای بد رو همه جا میشنویم دانش آموزان این دبیلدستان از شنیدن اینها خسته شده بودند گفتند چیز خوبی به ما بگو ارمیا هم دوست داشت به قوم یهودا چیز خوبی بگه حتی به خدا گفت تمام چیزی که از من میخوای موعظه کنم بدبختی هلاکت و غم و قصه است من دوست دارم چیز خوبی به اونها بگم اما نمیتونست چیز خوبی به اونها بگه چون که هیچ چیز خوبی برای گفتن به قوم یهودا وجود نداشت تنها چیز خوبی که ارمیا میتونست به اونها بگه امیدی بود که در معزه دوباره ساختن کوزه ها بود در این قسمت از پیغام ارمیا خبر خوب و امید بخشی بود وقتی که ارمیا پیغام امیدبخشش رو داد او هم مثل اشعیا این پیغام رو با نبوت مسیحایی همراه کرد اکثر وقتها او فراتر از بازگشت از اسارت بابل میره و از آمدن مسیح صحبت میکنه که نه تنها برای یهودا بلکه برای تمامی دنیا امید نهایی بود. شما میتونید ببینید در نبوتهای های مسیحایی و ارمیا این یک الگو بود. ارمیا این پیغام رو می کرد. اگر قوم من که به نام من مسما هستند فروتن شده دعا کنند و از راه های شرارت آمیزشان ها بازگشت نموده روی مرا بطلبند من از آسمان ها شنیده و گناهان آنها را خواهم بخشید و زمینشان را شفا خواهم داد. وقتی که قوم یهودا به پیغام ارمیا گوش ندادن ارمیا فهمید که باید رسیدن اسارت را موعظه کنه. وقتی که کتاب ارمیا رو می‌خونید، ملاحظه می‌کنید که بعضی از مهمترین های ارمیا خطاب به کسانی هست که قرار بود به اسارت بابل برن. ارمیا می‌دونست که اونها خواهند رفت و قوم یهودا هم می‌دونستند که خواهند رفت. طبیعتاً قوم یهودا اون رو به عنوان یک مصیبت کامل می‌دیدند. اونها اگر موعظه ارمیا نبود، مطلقاً هیچ امیدی نداشتند. پیغام امید بخش و زیبای ارمیا رو در حالی که اونها به اسارت می‌رفتند ملاحظه کنید. به این قسمت از کتاب مقدس به دقت گوش کنید. من اون رو خیلی دوست دارم. در باب 29 آیات 11 تا 14 ارمیا این پیغام باشکوه رو که از طرف خدا وحی شده برای اسرا می میکنه اونها تازه رفتن به اسارت بابل رو شروع کرده بودند خدا توسط ارمیا به اونها میگه زیرا خداوند میگوید فکرهایی که برای شما دارم میدانم که فکرهای سلامتی میباشد و نه تا شما را در آخرت امید بخشم و مرا خواهید خواند و آمده نزد من تضرع خواهید کرد و من شما را اجابت خواهم نمود و مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید مرا خواهید یافت و خداوند میگوید که مرا خواهید یافت و اسیران شما را باز خواهم آورد. و خداوند میگوید که شما را از جمعی امتدها و از همه مکانهایی که شما را در آنها راندم جمع خواهم نمود و شما را از جایی که و اسیری فرستادم باز خواهم آورد. آیا این امید مبارکی نیست وقتی که این امیدهای تسکین بخش رو در نامه ارمیا میخونید و توجه میشید که این خلاصه ای از مأزی باشکوهی هست که ارمیا برای قوم یهودا قبل از رفتن به اسارت بابل موعظه کرده. ارمیا به اونها میگه در ابتدای این اسارت خدا برای شما نقشهای داره و اون نقشه ها شما رو نابود نخواهد کرد. و به‌عنوان پدری مهربان یک کف دستی به شما میزنه. او شما رو تنبیه میکنه اما این برای خیریت شماست نه برای نابودی شما. خدا میخواد به شما امید و آینده بده. ارمیا در اون آیات مینویسه خدا میخواد به شما چیزی بده تا در آخرت به شما امید بده حالا وقتی که شما در بابل هستید این کاریه که باید انجام بدید تا خدا اون کاری رو که میخواد در زندگی شما انجام بده تا زمانی که در بابل هستید نزد خدا آمده و تظرو کنید روی خدا رو به و با تمامی دل دنبال خدا بگردید خدا شما رو خواهد شنید و شما او رو خواهید یافت و از همه مهمتر اینکه خدا شما را از اسارت باز خواهد گرداند الا کاربرد عملی شخصی پیغام ارمیا در این موعظه چی هست؟ اولا کاربرد شخصی اون اینه. گاهی ما خودمون تجربه اسارت داریم. آیا تاکنون تجربه اسارت داشتید؟ منظورم این نیست که آیا یک زندانی بودید یا اسیر جنگی. شاید هم عملا اون رو تجربه کرده باشید. اما منظور من اسارت روحانی هست. باز هم به اون ظرف از نو ساخته شده فکر کنید. شاید شما تصمیمات غیر گرفتید و در نتیجه تصمیمات غیر خدا شما را از یک دوره مشکل از زندگی عبور داده. شما عواقب کامل وحشتناک راههایی رو که انتخاب کردید تجربه کردید. عواقب اون راه ها و تصمیمات غیر رو و شاید گناه آلود رو تجربه کردید. وقتی که عواقب مصیبت ها میان مساله بزرگی اینه که شما چه واکنشی به تنبیه خدا نشون خواهید داد. آیا مانند داوود با موفقیت شکست رو پشت سر خواهید گذاشت در کتاب مقدس می‌بینید که در تعالیم عیسی بر این تاکید شده عیسی گفته دو خانه وجود داره و طوفان بر هر دوی اونها خواهد وزید یک خانه متلاشی میشه و دیگری پا برجا میمونه ای که پا برجا میمونه زیر بنای محکمی داره دیگری زیر بنای محکمی نداره اون اساس یا زیربنا چی هست اون کسی که خانه اش زیر داره کسی که کلام عیسیا رو میشنوه درک میکنه و در زندگی به کار میگیره بدین معنی که وقتی طوفان به خانه او فشار میاره او با زیربنای بنای کلام خدا به طوفان واکنش نشون میده کلام خدا به او نشون میده که چطور از اوته طوفان بربیاد کلام خدا به او میگه که چطور به طوفان واکنش نشون بده این کلامی بود که ارمیا برای قوم یهودا وقتی که در اسارت بودن نوشت شما در اسارت زندگی خواهید کرد این اجتراپ ناپذیره و نمیتونید اون رو عوض کنید وقتی که ارمیا اسارت اونها رو نبوت کرد او مایل بود که هر سختی و جفایی رو به خاطر پیغامش تحمل کنه او به پیغام خودش ایمان داشت چون خدا به او گفته بود پس حقیقت داشت تمامی نبوت ارمیا به انجام رسید انبیاء دروغین هم از ارمیا نفرت داشتند ارمیا یک معزه نمادین دیگری هم انجام داد و یوقی مانند اونی که بر گرده گاو می گرفت و بر گرده خودش گذاشت و پیغام بزرگی رو معزه کرد. او گفت این نقشه خداونده و همین الان واقع خواهد شد که شما به مدت هفتاد سال نبوکت نصر رو خدمت خواهید کرد. در واقع او گفت بابل امروز عبرقدرت جهان هست و به عنوان ابرقدرت جهان این نقشه خداست که تمامی قوم ها تا زمانی که نبوکت نصر حکومت می کنه او رو خدمت کنند. یکی از امیای دروغین به نام هننیا با ارمیا مخالفت کرد. او یوق پوسیده ای بر پشت خود گذاشته بود و به مخالفت با ارمیا پرداخت. او یوغ رو شکسته و گفت کلام خداوند چیزی نیست که ارمیا میگه. اسارت هفتاد سال طول نمیکشه. خداوند یوق نبوکت نصر را در عرض دو سال خواهد شکست و شما باز خواهید گشت. اسارت هفتاد سال طول نخواهد کشید. وقتی هننیا سخنان ارمیا را تکذیب کرد. ارمییا گفت حننیا این کلام خدا نیست و من کلام خدا رو به تو خواهم گفت تو در عرض یک سال خواهی مرد و بعد از دو ماه حننیا مرد مهمترین چیز در مورد ارمییا و تمامی انبیا حقیقی که مشروعیت اونها مهمترین چیز در مورد ارمیا و تمامی انبیای حقیقی که مشروعیت اونها رو تایید می‌کرد این بود که وقتی اونها نبوت می‌کردند اون نبوت مو به مو انجام می‌شد وقتی که اورشلیم در دوره صدقه‌ای پادشاه سقوط کرد، و به دنبال ارمیا فرستاد. این یکی از غم انگیزترین صحنه‌ها در کتاب ارمیا است. پادشاه دو بار دنبال ارمیا فرستاد. ارمیا به خاطر موعظه‌اش چال بود. چون ارمیا نبی مشروعی بود، پادشاه خواست با او صحبت کنه. پادشاه دی رو حاضر کرد و در مقابل ارمیا از اونها پرسید: آیا کلام جدیدی از خداوند دارید؟ ارمیا پاسخ داد: من کلام خدا رو به شما گفتم. بروید و تسلیم شوید ارمیا پیغامش رو تغییر نمیداد. داد ارمیا به صدقیا گفت کجا هستند تمامی اون انبیاه دروغینی که میگفتند نبوکت نصر نخواهد آمد کجا هستند تمامی اون انبیاه دروغینی که می میگفتند کلام من حقیقت نداره هر چیزی که ارمیا نبوت کرد به واقعیت پیوست به این دلیلی که ما کتاب ارمیا رو در کتاب مقدس داریم به این دلیلی که ارمیا یکی از انبیای قهرمان به حساب آورده شده اگرچه او به خاطر نبوت‌هاش به طرز باور نکردنی رنج کشید اما هر چیزی که نبوت کرد تحقق یافت وقتی که نبوت ارمیا رو میخونید به پیغام تنبیه و داوری خدا بر قوم یهودا نگاه کنید در این حال پیغام امید رو هم فراموش نکنید پیغام تنبیه خدا و امیدی را که قوم خدا ضمن تنبیه داشتند بپذیرید هر دوی این پیغام ها رو در شرایط شخصی زندگیتون به کار بگیرید و یادتون باشه وقتی خدا شما رو تنبیه میکنه او میدونه که برای شما نقشه ای داره نقشه ای که برای آزار شما نیست بلکه برای پیشرفت روحانی شماست او نقشه ای داره که برای شما امید و آینده بده. یادتون باشه که مهمترین چیز این هست که به تنبیه خدا واکنش درست نشون بدید تا اینکه خدا بتونه شما را از تجربیات اثارت شخصیتون برگردونه و شما رو تازه کنه. امروز تا وقت باقی هست تسلیم خدا بشید. خدا نقشه ای برای زندگیتون داره، نقشه برای امید در آینده. شنوندگان عزیز، متشکریم که با ما هم راه بودین. این در واقع حقیقت شگفت‌انگیزیه که خداوند ما ما رو میشناسه و نقشه عالی برای ما داره. نقشه خدا برای ما چیزیه که به ما امید و آینده میده. دعای ما اینه که شما این هفته برید و امیدی رو که یافتید با دیگران درمیون بذارید تا برنامه بعدی ما خدا به شما برکت بده.